سفر به اراغ چطور بود؟ خوش گذشت؟ بله، سفر زیارتی بسیار خوبی بود. حرم چند تن از نوادگان پیانبر را در عراق زیارت کردیم. به کدام شهرها رفتید؟ برای زیارت به شهرهای نجف، کربلا، کازمین و سامرا رفتیم. البته از بغداد و اربیل هم، دیدن کردیم خوب برایم کمی از خاطرات سفر به اراق بگو در شهرهای زیارتی بیشتر وقتمان به زیارت در حرم میگذشت اما در بغداد و اربیل از آثار تاریخی دیدن کردیم هوا چطور بود هوا خیلی گرم بود خصوصا هنگام ظهر معمولا از ظهر تا غروب در هتل میماندیم اما هوای اربیل در کردستان عراق خنک و ملایم بود چطور برای اینکه کردستان عراق در شمال این کشور در منطقه ای کوهستانی و معتدل قرار دارد آیا کشاورزی در عراق رونق دارد بله کردستان منطقه ای سرسبز است در منطقه بین دو دجله و فرات هم مزارع و باغهای زیادی وجود دارد عمدهترین محصول کشاورزی راق چیست خرما خرماهای خوشمزه و متنوعی در عراق وجود دارد